حالا میتونیم بریم سراغ تعریف 4م یعنی هنر جایی و حرکت در میان تونل‌های واقعیت مختلف و همونطوری که می‌بینید حسن دونستن و آگاهی به تعاریف مختلف هیپنوتیسم اینه که شما بهتر میتونید از تعاریف مختلف تو شرایط مختلف استفاده کنید و دیدگاه‌های مختلف رو ببینید باهاش آشنا بشید و بعد استفاده‌ای لازم رو نسبت به اون داشته باشید همینجا ممکنه این سوال پیش بیاد که تونل واقعیت چیه؟ سوال خوبیه اگه همراه سایت بوده باشید احتمالاً یه ابتدایی دارید به زبان ساده تونل واقعیت، اکسپریانس و تجربه شما در هر لحظه از زندگی رو نشون میده به این معنا که شما هر لحظه از زندگیتون دارید یک تونلی از واقعیت رو تجربه میکنید که اون تونل واقعیت حقیقت نیست حقیقت زندگی شما نیست اما یک تونلیه که برای شما شکل گرفته و جالب این جمله یکی اصلا اصل و اساس هیپنوتیزم رو شکل میده یعنی هیپنوتیزم از اینجا آغاز میشه این تعریف چهارم میبینید خیلی مهمه هیپنوتیزم از اینجا آغاز میشه که یک فرد بیاد آگاه بشه تجربه های اون در هر لحظه خود حقیقت نیست بلکه یک تونل واقعیت مصنوعی شکل یافت است که شرایط یا احساسات خود اون حتی برای ما شکل میده یعنی مثال میزنم یه فردی که عشق رو نسبت به کسی تجربه میکنه بعد ممکنه یک ساعت بعد از اون آدم متنفر بشه بعد دو دو ساعت بعد حس میکنه که عاشقشه و در مجموع موضوع اینه که انسان ها دائما دارن توی یک وضعیت هیپنوتیزمی زندگی میکنن دائما دارن توی یک تونل واقعیت زندگی میکنن و نه خود حقیقت این جهان و یه مثال خیلی واضح برای که بهتر موضوع متجرشی اینه که، بازه ای از نور که ما اسمشو نور مرعی میذاریم و حدود 400 تا 700 نانومتره ما به واسطه چشممون فقط این بازه رو میتونیم ببینیم و تشخیص بدیم در حالی که حقیقت که در اطراف ما در جریان داره بسیار بیشتر از این هاست اما به واسطه محدودیتی که چشم ما ایجاد کرده ما فقط این رنج رو میتونیم ببینیم و این تونل واقعیت بر ما شکل گرفته و باید بگم که مبحث تونل های واقعیت خیلی وسیعه شما میتونید با حرکت تو تونل های واقعیت مختلف یه جور های مسیر زندگیتون رو عوض کنید روی سلامت خودتون اثر بذارید روی ثروت خودتون روی انواع اقسام عباد مهم توی زندگیتون اثر بذارید و این چیزی که می بینید توی, توی دوره متافیزیک هم ممکن در روی صحبت کنید و بسیار مفید و مهم میتونه باشه که شما بتونید حرکت کنید میان تونل های واقعیت مختلف و در نتیجه از هر تونل واقعیتی اون چیزی که مد نظرتون هست رو برداشت کنید برای زندگی و منافع خاصی که در ذهن دارید. مثالی که خدمتون هم ععرض کنم گذر زمان هست با وجود اینکه حقیقت زمان ثابته، اما موضوع اینجاست که تجربه ما از گذر زمان از گذر یک ثانیه که یک, یک استاندار جهانی ثابت مقدارش دیدید که یه زمانی یه جایی خوش نمیگذره انگار زمان هم دیر میگذره یا یه جایی خوش میگذره زمان زود میگذره حقیقت همینه اصلا زمان به ساز شما نمیرخص زمان ثابته اما تجربهی که شما دارید تونل واقعیت که شما توش قرار گرفتید حتی تجربه شما از زمان رو سلامت شما رو ثروت شما رو هر چیزی رو تحت تاثیر خودش قرار میده و بنابراین تعریف چهارم تکرار میکنم هنر حرکت بین واقعیت ها و تونل های واقعیت مختلف میشه هیپنوتیزم این تعریف هم خیلی کارآمده، خیلی مهمه واقعیت های ماضی استفاده های بسیار زیادی میتونن داشته باشن شما میتونید با هیبنوتیز کردن خودتون حرکت کنید تو واقعیت های مختلف و اثرات مختلفی رو دریافت کنید و این موضوعیه که بعدها و در ادامه این دوره خیلی امیختر من با شما در مورد صحبت خواهم کرد